فصل هفتم در ماه می جنگ به پایان رسید دو هفته پیش از آن دولت با صدای رسار رسما اعلام کرد برای آن دست از مردم که آغازگر آشوب بودند تنبیهات شدید و بیرحمانه را به اجرا خواهد گذاشت سرهنگ آرلیانو بوئندیا در حالی که به حیبت یک جادوگر سرخ درآمده بود در مرز رسیدن به جبهه غربی دستگیر شد از 21 نفری که برای نبر در راه آزادی از ماکندو به دنبال او راه افتاده بودند 14 نفر در جنگهای مختلف کشته شدند و 6 نفرشان مجروح شده و از کار افتاده بودند در آخرین لحظه قبل از شکست نهایی فقط سرهنگ جرینلد و مارکز در کنارش باقی مانده بود که اعلامیه رسمی خبر دستگیری او را با آب و تاب در ماکوندو به اطلاع عموم رساند. ارسلا هم خبر سلامتی اورلیانو را به شوهر دیوانش اینچنین اعلام کرد خوشبختانه زنده است بیا دعا کنیم دشمناش بهش رحم کنن در بعد از ظهر سه روز بعد ارسلا در حالی که ماده اولیه شکلات را روی اجاق آشپسخانه هم میزد و آهست عشق میریخت ناگهان صدای پسرش رو شنید و گفت آرلیانا؟ صدای اورسولا از فرط شادی و حیجان به ارتعاش افتاده بود به طرف درخت بلود دوید و به شوهر دیوانش گفت خودشه صدای آرلیانا بود نمیدونم این معجزه چجوری اتفاق افتاد اما مطمئن شدم که اون زنده است و طولی نمیکشی که خودشو صحیح و سالم میبینیم و چون به این حرف خود باور داشت دستور داد کف اتاقها را تمیز کنند و جای ها را تغییر دهند. اما یک هفته بعد ای در شهر پخش شد و به گوش آنها رسید. ای که منبع مشخصی نداشت. آن شایعه گفت سرهنگ اورلیانو بوئندیا به مرگ محکوم شده و قرار است به زودی در شهر زادگاهش ماکوندو برای عبرت عمومی در ملعه عام اعدام شود. روز دوشنبه حدود دهانی صبح وقتی آمارانتا در حال پوشاندن لباس به تن آرلیاناخوزه خوزه بود ناگهان صدای مارش نظامی و صدای قدم های نظامیان را از دور شنید. هنوز لحظه ای نگذشته بود که ارسلا سراسیمه خودش را به اتاق انداخته و با صدای بریده گفت اونا اونا دارن پسرمو پسرم میارن سربازان که در خیابان در حال حرکت بودند به زحمت توانستند با ته قنداق تفنگهایشان بر ازدهام روبه افزایش مردم چیره شوند اورسولا و آمارانتا به بیرون دویده و با هزار زحمت توانستند از میان مردم راهی برای خود باز کنند و به نبش خیابان برسند در آنجا بود که بالاخره توانستند آرلیانو را ببینند با سر و که بیشتر به گداها شباهت داشت لباسهایش پاره بود و موهای سر و صورتش کسیف شده و مانند نمد به هم چسبیده بود پاهایش هم لخت و بدون کفش بودند به این که زمین داغ را زیر پاهای برهنه خود حس کند راه می رفت دستهای او پشت سرش بود و با تناب بسته شده بود و سر دیگر تناب به افسار دهنی اسب یک افسر متصل بود او را کشان کشان با خود می آوردند. در کنارش سرهنگ جرینلدو مارکز با وضعی به مراتب بدتر از او حرکت میکرد ظاهرشان نشان میداد که از وضع خود ناراحت نیستند و در عوض از سر و صدای مردم که انواع ها را نسار نظامیان میکردند معذب بودند ارسولا در میان قوقای مردم سعی کرد خودش را به آرلیانو برساند وقتی یکی از سربازان میخواست جلوی او را بگیرد ارسلا سیلی محکمی به صورت آن سرباز زد و گفت اون پسرمه اسب افسری که آرلیانه را به جلو میکشید، در اثر ازدهام شدید مردم ایستاد سرهنگ آرلیان بو هم ایستاد و با دیدن ارسلا نخواست که مادرش او را در آغوش بگیرد فقط به چشمان او نگاه کرد و گفت مادر برگرد خونه بعدا ازشون اجازه بگیره توی زندان بیامراختن بعد به آمرانتا نگاه کرد که با حالتی از تردید دو قدم عقبتر از ارسولایی ایستاده بود آرلیانو باند پیچی دست راست او را که دید با لبخندی پرسید دستت چی شده؟ آمرانتا دست باند پیچی شده اش را بلند کرد و جواب داد سوخته. بعد با عجله مادرش را از پشت گرفته و به عقب کشید تا زیر دست و پای اسب نماند. نظامیان با دیدن اینکه ازدهام جمعیت رفته رفته بیشتر می شود سرعت خود را بیشتر کردند و به حالت یورتمه او را از میان جمعیت خارج کرده و به زندان بردند. در اوایل شامگاه آن روز، اورسولا توانست پسرش سرهنگ اورلیانو بوندیا را در کنج زندان ملاقات کند. ابتدا به سراغ پدرزنش دون آپولینار مسکوتا رفت تا با استفاده از اختیارات قانونی او بتواند به دیدن پسرش برود اما او در مقابل قدرت مطلقه نظامیان هیچ اقتداری نداشت پدر روحانی نیکانور هم دچار تبه هپاتیت شده و در بستر افتاده بود از طرفی پدر و مادر سرهنگ جرینلد و مارکز که به مرگ محکومش نکرده بودند با وجود سبک بودن جرم پسرشان نتوانستند او را ملاقات کنند و با قنداق تفنگ به عقب رنده شده بودند اورسولا با دیدن این اوزا و با قطع امید از دیگران و با علم به اینکه پسرش را صبح فردا ایدام خواهند کرد هر چیزی را که به نظرش ضروری رسید در بخچه گذاشت و برای دیدن پسرش به تنهایی اقدام کرد او به مأمورین زندان گفت من مادر سرهنگ آرلیان و هستم و میخوام پسرم و ببینم نگهبانان به حرفش اعتنایی نکرده و جلویش را گرفتند. ارسلا هم به آنها اختار داد و گفت هر طور که شده میرم تو پس اگه دستور دارید به ام کنین همین حالا دست بکارشین و بدون بال این اختار آنها را از سر راه خود کنار زده و به داخل یکی از کلاس های سالمانده مدرسه سابق رفت تعدادی از سربازان نیمه لخت آنجا نشسته و توفنگ های خود را روغنگ کاری در این موقع یکی از افسران که لباس کار تن داشت و صورتش سرخ رنگ بود با همون عینک ته استکانیش خیلی خشک و مقرراتی به نگهبانان دستور داد تا خود را عقب بکشند اورسولا با دیدن حرکت او گفت من مادر سرهنگ آرلیان و بو هستم افسر بعد از شنیدن این حرف با لفخندی گفته او را اصلاح کرد و گفت آ پس شما مادر آقای آرلیان بوندیا هستین. اورسولا صدای او را که شنید، رگه‌ای از لهجه کوهنشینان اطراف ماکوندو را تشخیص داد و گفت: "آرتور شما میفرمایید فقط می خوام پسرمو از نزدیک ببینم." از مقامات بالا دستور رسیده بود که کسی حق ندارد با زندانیان محکوم به مرگ ملاقات کند، اما آن افسر این فرمان را ندیده گرفته و با مسئولیت خودش به ارسولا اجازه داد تا یک ربع ساعت با پسرش دیدار و گفتگو کند. ارسولا هم محتویات داخل بخچه را باز کرده و به او نشان داد که شامل لباس زیر، یک جفت جکمه کوتاه که او در روز مراسم ازدواجش با رمدیوس پوشیده بود و مقداری شکلات که از روزی که به ارسولا الهام شد که او خواهد آمد برایش کنار گذاشته بود. او پسرش سرهنگ اورلیان بوئندیا را در یکی از کلاسهایی که حالا به صورت زندان درآمده بود، در حالی دید که روی یک گهواره سفری به پشت دراز کشیده و بازوهایش را به دو طرف باز کرده. زیر بغلهایش زخم بود. به او اجازه داده بودند تا سر و صورتش را اصلاح کند. حالا سبیل‌های تاب داده شده پرپشت او تا نزدیک گونه‌هایش میرسید و به نظر اورسولا رنگ پریدهتر از زمانی بود که ماکوندو را به قصد جنگ ترک کرد. قدش انگار کمی بلندتر شده بود و تنها تر از همیشه به نظر می رسید. او از اتفاقاتی که در خانهشان روی داده بود با خبر بود. مثل خبر خودکشی پیترو کرسپی، اقدامات خودسرانه و رفتارهای مستبدانه ارکادیو سوم و در نهایت اعدام او و رفتارهای جنونامیز پدرش در زیر درخت بلوط. او میدانست که اماران تا بیوی است که کماکان باکره مانده و خود را وقف بزرگ کردن آرلیانو خوزه کرده و آن پسر بچه خواندن و نوشتن را یاد میگیرد و پسر فهمیده است. اورسلا از همان لحظه نخستی که وارد سلول او شد فهمید که آرلیانو در اثر جنگ پخته تر شده و از تمام حرکاتش اقتدار میبارد و تعجب کرد که او از همه چیز باخبر است. او با شوخی به مادرش گفت شما همیشه می که من یه جادگرم بعد با لحن جدیتری ادامه داد وقتی امروز صبح منو به اینجا می آوردن این احساس به دست داد که قبلا این صحنه رو دیدم وقتی از میان ازدهام مردم عبور می کرد به فکر فرو رفته بود و از تغییرات به وجود آمده در شهر شگفت زده شده بود شخ و برگ های درخت ها شکسته و فروریخته بود جلوی خانه ها را رنگ آبی زده بودند بعدش به رنگ قرمز درآورده بودند و بعد از آن دوباره به رنگ آبی تا به صورت رنگی نامشخص و در هم و برهم در آمده بود اورسلا با شنیدن این حرف آهی کشید و گفت خب انتظار داشتی چطوری بشه؟ زمان سریع میگذره آرلیانو حرف او را تایید کرد و گفت: نه به این سرعت. ملاقات کوتاه میان آنها که هر دو خود را برای سوالها و جوابهای احتمالی آماده کرده بودند، با همون حرفهای روزمره تمام شد. وقتی نگهبان پایان وقت ملاقات را اعلام کرد، آرلیانو با عجله یک لوله کاغذی عرق کرده از زیر توشک خود درآورد و به دست مادرش داد. که هاوی اشعاری بود که در متح رمدیوس و با الهام از او سروده بود او موقع ترک ماکوندو آنها را با خودش برده بود و شعرهایی را هم که در مدت جنگ می سرود با آنها اضافه کرده بود به مادرش گفت بهم قول بده که نظری کسی اینا رو بخونه امشب بجا که روشن کردی بندازشون همون تو ارسلا هم به او قول داد وقتی بلند شد تا پسرش را ببوسد و از او خداحافظی کند، آهسته گفت برادی تبانچه آوردم سرهنگ آرلیان بو اندیا زیر چشمی نگاهی به بیرون انداخت تا مطمئن شود که نگهبان متوجیان ها نیست و آهسته به مادرش گفت توی این موقعیت دیگه به دردم نمیخوره اما بلش به من چون ممکنه وقتی برگشتن بگردنت اورسلا تپانچه را از داخل پستان بند خود درآورد و آرلیانو هم آن را زیر تشک مخفی کرد بعد خیلی مصمم و خونسرد گفت با آن خودآفظی نکن التماس کسی را هم نکن خیال کن منا سالها پیش تیر بارون کردن اورسولا با شنیدن این حرف آخر لب خود را گاز گرفت تا گریهاش نگیرد و به پسرش گفت روی زخمات سنگ داغ بسار و بعد برگشت و از اتاق خارج شد سرهنگ آرلیان با آنقدر انقدر سر سرپا ماند تا مادرش بیرون رفت و در پشت سر او بسته شد بعد به روی ننوی خود دراز کشید و پاهایش را به دو طرف باز کرد از همان آغاز سن نبلوغ بود که فهمید غریزه پیش بینی وقایع را دارد و با خود فکر کرد که مرگ زمان وقوع خود را به وضوح اعلام خواهد کرد اما حالا که چند ساعتی از عمرش باقی مانده بود هیچ نشانه ای به او الهام نشده بود روزی زنی جوان و زیبا به اردوگاه توکرینکا مراجعه کرده و از نگهبان درخواست کرده بود تا او را ملاقات کند از گذشته رسم بود که بعضی از مادران دختران دم وقت خود را برای اصلاح نژاد به همخابی با شجاعترین مردان جنجو می فرستادند او در آن لحظه سرودن شعری را در وصف مردی که در باران گم شده بود به پایان برده و در حال گذاشتن لوله کاغذ در کشوی میزش بود در این حالت پشتش به طرف در ورودی بود که آن زن وارد اتاق شد او هم به اینکه برگردد با غریزه خود خطر را حس کرد تپانچه را از کشو در و خطاب به آن زن گفته بود لطفا تیراندازی نکنید بعد تپانچه در دست به طرف او برگشته بود آن زن هم اصله خود را پایین آورده و حاج و واج مانده بود که چه کار کند آرلیانو با بهره گرفتن از این حس قریزی خود توانسته بود از یازده توطعه جان سالم به در برد وقتی در مانعور اردو زده بودند دوست و همرزم سمیمیش سرهنگ مگنیفیکو دوچار تب و لرز شد آرلیانو از روی محبت به او اجازه داد تا روی گهوارش دراز کشیده و کمی استراحت کند تا شاید تب و لرزش برطرف شود. خودش هم رفته بود و در چادر کناری ستاد فرماندهی استراحت کرده بود. در همین وقت ناشناسی وارد چادر او شده و به خیال اینکه سرهنگ آرلیانو بوئندیا را میکشد، آن افسر نگونبخت گرفتار در تب لرز را با ضربات چاقو به قطر رسانده و فرار کرده بود. در حالی که او چند قدم آن طرفتر مشغول استراحت بوده و خبر نداشت در چادرش چه میگذرد. بارها سعی کرد به حس پیشبینیش ترتیب خاصی بدهد اما موفق نشد او آنها را به شکل انواج ناگهانی و در الهامی مابد و طبیعی دریافت می کرد. مثل اطمینانی قاطع و ای که غیر قابل درک بود این الهامات گاهی چنان طبیعی بودند که او می توانست بلا فاصله تشخیصشان دهد و تا وقتی هم اتفاق نمی افتادند او آنها را به حساب پیشگویی نمی گذاشت اغلب هم چیزی جز موهومات نبودند وقتی دستگیر شد و به اعدام محکومش کردند از او پرسیدند آخرین تقاضایش چیست بدون کوچکترین شکی از روی همان غریزه بلا فاصله جواب داده بود می خوام که توی ما اجرا بشه رئیس دادگاه نظامی دچار شک و تردید شده و با عصبانیت گفته بود دست از درنگ بردار این یه حقق است که بتونی وقت بخری سرهنگ آرلیانو جواب داده بود شما از من پرسیدین آخرین تقاضام چیه منم گفتم حالا اگه قبول نمیکنین مشکل شماست من از آن به بعد دیگر چیزی را پیشبینی نکرده بود روزی که اورسولا در زندان به ملاقات او آمده بود مدت زیادی راجع به این حس قریزی فکر کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که شاید وقوع مرگ به این دلیل به او الهام نمی شود که به تصادف بستگی ندارد و مربوط به خواست و اراده اعدام کننده هاست. شب را در اثر درد زخمهایش نتوانست بخوابد. قبل از سپیددم صدای نزدیک شدن قدمهایی را در راهرو شنید و در دل به خود گفت درمیان ببرنم بعد به هیچ دلیلی یاد پدرش خوز ارکادی و بوهندیا افتاد که در آن لحظه و در آن سپید دم خوفناک زیر درخت بلوط نشسته بود و به آرلیانو فکر می کرد آرلیانو احساس ترس نداشت و دلتنگ هم نبود تنها از ته دل خشمگین بود که این مرگ تحمیلی نابهنگام به او فرصت نخواهد داد تا پایان و نتیجه کار ناتمام خود را به چشم ببیند. در افکارش غرق بود که در سلول باز شد و نگهبان با فنجانی قهوه وارد شد. آن روز به پایان رسید بی این که حکمی اجرا شود. فردای آن روز و درست در همان ساعت غرق در حال و هوایی بود که روز قبلش داشت. از درد و خشم ناشی از زخم های زیر بغلش هزیان می گفت. روز پنج شنبه شکلات هایی را که مادرش آورده بود بین نگهبانان تقسیم کرد و لباس تمیز پوشید که برایش کمی تنگ شده بود. چکمه های ساخ کوتاه را هم بپا کرد. روز جمعه هم آمد اما هنوز او را تیرباران باران نکرده بودند. حقیقت این بود که آنها جرأت نمی کردند حکم اعدام را اجرا کنند. وضع شهر را آشفته دیده بودند و فکر می کردند اعدام سرهنگ آرلیانو بوئندیا ممکن است عواقب سیاسی وخیمی نه تنها در ماکوندو، که در کل مناطق اطراف طالاب در پی داشته باشد. به همین دلیل در این باره با مقامات مرکز استان وارد گفتگو شدند. شنبه شب در حالی که آنها منتظر پاسخ مقامات بودند، فرمانده گروه، سروان روخ کارنیسرو به اتفاق چند افسر دیگر به میکده کاتارینا سرزدند آنجا تنها یک زن آن هم به زور و با تهدید حاضر شد او را به اتاق خود راه دهد در داخل اتاق بودند که زن پیش او کرد ما دوست نداریم با مردی هم بستر بشیم که میدونیم به زودی میمیره البته ایشکی نمیدونه چطوری ولی همه میگن افسری که سرهنگ آورلیان و بو رو تیر بارون کنه و همه سربازه جوخش دیریازود کشته میشن حتی اگه اون سر دنیا باشن سروان روخ کارنیسه رو این موضوع رو به اطلاع افسران دیگر رساند و آنها هم به مقامات بالاتر اطلاع دادند یک شنبه بعد بی این که کسی این موضوع رو نزد دیگری فاش کرده باشد یا اقدامی از سوی نظامیان به عمل آمده باشد تمامی اهالی شهر با خبر شده بودند که هیچ هیچیک از نظامیان حاضر به قبول مسئولیت اعدام سرهنگ آوریان و بویندیانی استند بلاخره حکم رسمی مقامات با پست روز دوشنبه به آنها رسید در این حکم گفته شده بود که حکم اعدام باید در 24 ساعت آینده اجرا شود آنها از روی اجبار به قرعه متوسل شدند افسران نام خودشان را روی هفت که کاغذ نوشته و داخل کلاهی انداختند نام سروان رخ کارنیسه رو از کلاه بیرون آمد او با دیدن این وضع با لحن ترخی گفت از سر نوش نوشه فرار که من یه مادر به خطا به دنیا آمدم و یه مادر به خطا از دنیا میرم او ساعت پنج صبح روز بعد نفرات جوخه آتش را که آنها هم از روی قرآن انتخاب شده بودند در حیات مدرسه به صف کرد بعد مرد محکوم را با این عبارت از خواب بیدار کرد ای بوهندیا باشو بریم موقعش رسیده سرهنگ آرلیان بوهندیا در جواب گفت از تعبیرش این بود دیشب خواب دیدم که زخمام خوب شده ریبکا بو وقتی فهمید آرلیانه را فردا صبح اعدام خواهند کرد ساعت سی بعد از نیمه شب از خواب بیدار شد و در اتاق خوابشان در تاریکی و روی لبه تخت خوابی نشست که در اثر ارتعاش خور و پف شوهر قول پیکرش میلرزید و از لای پنجره نیمه باز به دیوار گورستان خیره شد او سراسر هفته گذشته را همانطور در انتظار به برده بود درست؟ با همون صبر و سرسختی که زمانی رسیدن نامی از پیترو کرسپی را انتظار میکشید کادیوی دوم به او گفته بود اونا اینجا تیربارو نمیکنند. بسی اینکه معلوم نشه افسر جوخه و سرباز ها بودن تو سرباز خونه ادامش میکنن همونجام دفنش میکنن تا سر صداها بخواه اما ربکا کماکان به انتظار کشیدن ادامه داد و زیر لب گفت اون کسافت همینجا تیر برونش میکنن او انقدر به حرف خود باور داشت که مطمئن بود در خانهشان را باز میکند و با حرکت دست با آرلیانو ودا خواهد کرد شوهرش که حالا در اثر تکانهای او از خواب بیدار شده بود تاکید کرد اونا احمق نیستن که آرلیانو را از خیابون رو بر بدن اونم با شیشت سرباز ترسیده خوب می‌دونن که مردم حاضرن جونشونم واسه اون بدن. اما ربکا بی توجه به استدلال شوهرش به نگاه خود به بیرون ادامه داد و در جواب گفت حالا میبینی که چقدر احمقن. در ساعت پنج صبح وقتی ربکا به لبه تخت خواب چنگ زده بود تا بر اثر بیخوابی و خستگی نیفتد آنها را دید. به خوزارکادیه دوم گفت دارن میارنش بعد آهی کشید و گفت آهی ببین چقدر خوشگل شده خزارکادی دوم بلا فاصله فنجان قهفهش را سر کشید و از جایش بلند شد ابتدا از لای پنجره بیرون را نگاه کرد و بعد قلاده سکهای شکاریش را آزاد گذاشت و برادرش را دید که افتان و خیزان پا به پای آنها جلو رفته و پوشت با اندیوار ایستاد. دید که آرلیانو دستهایش را به خاطر زخمهای زیر بغلش روی کمر گذاشت. سرهنگ آرلیانو بوندیا در همان حالت با خشم و نفرت خودش را سرزنش کرد و گفت اه، آدم باید خیلی زلیل و بدبخ بشه که بذاره تا سرباز پیزوری تیر بارونش کنن و نتونه هیچ کاری بکنه. بار دیگر سرزنش خود را تکرار کرد. انگار که میخواست بر سر غیرت بیاید. سروان رخ کارنیسه رو با دیدن او در آن حالت و با تصور اینکه دارد دعا می‌خواند، تحت تأثیر قرار گرفت. وقتی جوخه آتش لوله های تفنگشان را به سوی او نشانه رفتند، خشم و نفرت لحظات قبل تبدیل به ترخ کامی شدیدی شد. زبانش بند آمد و چشمانش را بست و نور سربی رنگ سپیددم از نظرش محو شد. این بار خودش را در دوران کودکیش دید که شلوارک به پا دارد و کراواتی به گردنش بسته. پدرش را دید که در بعد از ظهری با شکوه دست او را گرفته و با خودش به چادر کولی ها میبرد. در همانجا جا بود که برای اولین بار یخ را دید. در همین لحظه صدای فریادی شنید و فکر کرد که افسر جوخه فرمان آتش را سادر کرده. چشمان خود را با کنچکاوی تو ام با لرزش باز کرد هر آن انتظار داشت گلوله ها در تنش فرو بروند اما سروان روخ کارنیسرو را دید که دستهایش را بالا گرفته و خوزارکادی دوم لوله تفنگش را به طرف او نشانه رفته سروان کارنیسرو به خوزارکادیو که در حال عبور از عرض خیابان بود و به سمت آنها میآمد گفت دیراندازی نکن من از خدا میخواستم که یکی از شما بیاد تا مجبور نشیم تیر بارونش کنیم. از آن لحظه به بعد جنگ دیگری علیه دولت مرکزی آغاز شد. سروان روخ کارنیسرو به اتفاق آن شش سرباز تحت امر سرهنگ سرخنگ و بوئندیا قرار گرفته و به همراه او حرکت کردند تا ژنرال ویکتوریا مدینا را که در بندر ریاچا زندانی و محکوم به مرگ شده بود نجات بدهند. برای اینکه در وقت صرف جویی کرده باشند، تصمیم گرفتند مسیر کوهستان را در پیش بگیرند. جادهی که دهها ها سال قبلتر خوزار کادیو بوئندیا به همراه مهاجرین دیگر آن را طی کرده و ماکوندو را گذاری کرده بود. آنها پس از یک هفته راهپیمایی پی بردند که دست به اقدامی ناممکن زدند. بنابراین تصمیم گرفتند جاده خطرناک سینه کش کوه را ادامه داده و تنها به اسلحه و مهمات سرباز همراهشان متکی باشند آنها بدون حمل اسلحه و مهمات سنگین و دستپاگیر به حرکت خود ادامه دادند هر جا که به روستای شهری می رسیدند در نزدیکی آن می کردند و از میان خودشان یک نفر را در لباس مبدل و با یک ماهی کوچک طلایی به آنجا می فرستادند تا با آزادی تماس برقرار کنند آزادیخواهان هم هر کجا که بودند به بهانه شکار بیرون می‌زدند و به آنها ملحق می‌شدند چند روز دیگر هم راه پیمایی کردند و وقتی از بالای کوه چشمشون به بندر ریوچا چا افتاد مدتی از اعدام ژنرال ویکتوریا مدینا گذشته بود همراهان سرهنگ آرلیان بوئندیا که رفته رفته تعدادشون بیشتر میشد. او را به عنوان رهبر نیروهای انقلابی سواحل دریای کارائیب و با درجه سرتیپی انتخاب کردند. او این مسئولیت را پذیرفت اما از قبول ارتقاء درجه خودداری کرد. گفت تا زمانی که دولت در دست محافظ کاران باشد از پذیرفتن درجه بالاتر امتنا خواهد کرد. هنوز سه ماه از آغاز خیزش دومشان نگذشته بود که موفق شده بودند بیشتر از هزار مرد را مسلح کنند اما طولی نکشید که همگی کشته شدند و دوباره به عقب رانده شدند نجات یافته ها خود را به جپه شرقی رساندند آخرین خبر این بود که آنها از طریق جزایر کوچک آنتیل به سوی کاپو دلاولا رفتند دولت با زدن تلگراف هایی به سراسر کشور کشته شدن سرهنگ آرلیان و بویندیا را به اطلاع عموم رساند و شورش را پایان یافته اعلام کرد اما هنوز دو روز از ارسال پیامهای های شادباش دولت نگذشته بود که تلگراف دیگری مخابره شد که اعلام می کرد خیزش دیگری علیه دولت و این بار در مناطق جنوبی کشور شکل گرفته اینگونه بود که افسانه سرهنگ آرلیان و بویندیا کم زمان در همه جا حضور داشت در سراسر مملکت بر سر ها افتاد. اخبار زد و نقیزی درباره او شایع شده بود. برای مثال، در جایی او را فاتح جنگ ویلانوئا اعلام کرده بودند، در خبر دیگری اعلام شد که او در گوآ کامایال شکست خورده و به دست سرخپوستان موتیلان تکه پاره شده. در خبر دیگر آمده بود که او در یکی از روستاهای اطراف تالاب جان باخته و همزمان دوباره خبر رسید که در اورامیتا مسلح دیده شده رهبران آزادیخواه که در حال مذاکره برای تصاحب بعضی از کرسی های مجلس بودند او را فردی یاغی و ماجراجو اعلام کردند که از حزبان ها نیست دولت ملی او را دزد و راهزن اعلام کرد و مبلغ پنج هزار پزو برای سر او جایزه تنین کرد سرهنگ آورلیان بویندیا پس از شانزده شکست به همراه دو هزار سرخ پوست مسلح از شهر گواخی را خارج شد. او ریا را فتح کرد و آنجا را ستاد عملیاتی خود قرار داد و به دولت اعلام جنگ کرد. پیامی از سوی دولت دریافت کرد که تهدید کرده بودند اگر تا 48 ساعت دیگر همراه با قوای خود به جبهه شرقی عقب نشینی نکند، سرهنگ جرینلد مارکز را تیر باران کرد سروان روخ کارنیسه رو که حالا با درجه سرهنگی رئیس ستاد او شده بود تلگراف دولت را با نگرانی و آشفتگی به دست او داد اما او آن را با شادمانی خانده گفت چه <تصفيق> جالب <تصفيق> حالا ما کندو هم تلگراف خونه داره جواب او قاطع و تعین کننده بود انتظار داشت که در سه ماه آینده ستاد خود را در ماکوندو برقرار کند و اگر تا آن موقع سرحنگ جرینلدو مارکز را صحیح و سالم تحویل نگیرد تمام افسران ارتش مرکزی را که در اسارت خود دارد تیرباران خواهد کرد ابتدا هم از افسران ارشد و تیمسارها شروع خواهد کرد و به زیردستانش دستور خواهد داد که تا پایان جنگ همین رویه را ادامه دهند او آنقدر روی حرف خود پافشاری کرد تا آنکه بعد از سه ماه و در میان شادی و حلحلهٔ مردم وارد ماکوندو شد اولین کسی که به استقبال او آمد و در آغوشش گرفت سرهنگ جرینلدو مارکز بود خانهشان پر از بچه شده بود اورسولا سانتا سوفیا پیداد را به همراه دختر بزرگ و بچه های دوغلویش که پنج ماه بعد از زمان تیرباران آکدیای سوم به دنیا آمده بودند به خانه آورد. این زن جوان برخلاف آخرین تقاضای شوهرش نام دختر بزرگشان را رمدیوس گذاشته و گفته بود. مطمئنم منظور اون همین بوده. اسم اورسولا را رو روی بچم نمیذارم وگرنه خیلی زش میکشه و سرنوشت بدی خواهد داشت. اسم دو دوقلوها را هم که پسر بودند خوز آرکادی و و آرلیان و گذاشت آمارانتا سرپرستی همه را به عهده گرفت و تعدادی صندلی چوبی در اتاق نشیمن چید و با جمع کردن بچه های خانواده های همسایه مهد کودکی برپا کرد وقتی سرخنگ آرلیان و در میان شور و حلحله و آتشبازی و نواخته شدن ها وارد شهر شد موقع ورود به خانهشان با آواز دست جمعی بچه ها مورد استقبال قرار گرفت. پسرش آرلیانو خوزه که او را از پیلار ترنه را داشت و مانند پدر بزرگش قد بلند بود لباس افسران انقلابی را پوشیده بود و به آرلیانو احترام نظامی گذاشت. در این میان همه اخبار خوشایند نبودند. یک سال پس از فرار او برادر بزرگش خوزارکادیو دوم به همراه همسر خود ربکا از خانه قبلیشان در روبروی گورستان نقل مکان کرده و به خانهی که آرکادیو ساخته بود رفته بودند. هیچ کس از دخالت او برای نجات و فراری دادن برادرش از دست قوای دولتی خبر نداشت. خانه جدیدشان در بهترین قسمت میدان مرکزی شهر بود و زیر سایه درخت بزرگ بادامی قرار داشت که سه پرنده سینه سرخ در بالای آن لانه کرده بودند. آن دو به این ترتیب برای خود زندگی توم با آسایشی فراهم کردند. خانهشان در بزرگی داشت که مخصوص ورود مهمانان بود و چهار پنجره بزرگ نورگیر که به روی همه باز بود. دوستان ربکا که خواهران مسکو هم در میانشان بودند دور هم جمع شده و جلسات گلدوزی و ملیل دوزی را که سالها قبل در ایوان گل‌های بگونیا متوقف شده بود از سر گرفتند خوزارکادی دوم به جمع‌آوری مالیات ادامه میداد و ثروت خود را بیشتر می‌کرد هر بعد از ظهر او را سوار بر اسب و با تعدادی خرگوش و تفنگ دلول شکاری آویزان از شانه به همراه سگ‌های شکاری درندش میشد دید که از شکار به خانه برمیگردد در بعد از ظهر یکی از روزهای ماه سپتامبر، به خاطر طوفان زودتر از وقت معمول به خانه برگشت. به ربکا که در اتاق نهار خوری بود سلام داد. ها را در حیات بست و خرگوشها را در آشپزخانه آویزان کرد تا سر فرصت نمک سودشان کند. بعد به اتاق خوابشان رفت تا لباسهایش را عوض کند. ربکا بعدها ادعا کرد که وقتی شوهرش به اتاق خوابشان رفته او در دستشویی را به روی خود بسته بود و چیزی نشنیده. این ادعای او را نمیشد به آسانی ها پذیرفت. مدرک موجهی هم وجود نداشت تا بتوان ادعای او را رد کرد. هیچ کس نمی توانست که ربکا برای قتل مردی انگیزه داشته باشد که او را به خوشبختی رسانده بود. شاید این تنها راز در ما کنده بود که هرگز فاش نشد به محض ورود خزارکادی دوم به اتاق خوابشان در پشت سرش بسته شد و صدای شلیک تپانچه در خانه پیچید خون او از زیر در به طرف راهرو جاری شده و از طریق اتاق نشیمن به بیرون رسیده بود بعد پستی و بلندی های خیابان عربها را طی کرده، از پله ها سرازیر شده، سربالایی ها را پشت سر گذاشته، به طرف راست پیچیده، بعد به سمت چپ تغییر مسیر داده. بعدتر که جلوی خانه بو ها رسیده، 90 درجه منحرف شده، و از زیر در بسته به داخل نفوذ کرده و برای آنکه فرش ها را کسیف نکند، از کنار دیوارهای پذیرایی راهش را ادامه داده در همان مسیر از اتاق نشیمن هم گذشته و میز غذاخوری را دور زده از کنار ایوان گلهای بگونیا رد شده و به اینکه دیده شود از زیر صندلی آمارانتا که به آرلیان خوزه درس ریاضی میداد عبور کرده و در نهایت از وسط انبار رد شده و به داخل آشپزخانه رسیده ارسلا که خود را آماده می کرد تا سی تخم مر را شکسته و با خمیر آرد مخلوط کند با دیدن خون وحشت زده فریاد زد یا ها مقدس و برای اینکه به منبع خون پی ببرد مسیر آن را دنبال کرد ابتدا از داخل انبار گذشت بعد از کنار ایوان گلهای بگونیا عبور کرد بعد صدای آرلیانا خوزه را شنید که سه و سه میشه شش شش و سه میشه نه را میگفت از وسط اتاق نهارخوری عبور کرد وارد اتاق نشیمن شد از اتاق پذیرایی گذشت خط سیر خون را گرفت و وارد خیابان شد به سمت راست بعد به طرف چپ پیچید به خیابان عرب ها رسید در حالی که حواسش نبود با پیشبند آشپسخانه و دمپایی راحتی به خیابان آمده به میدان مرکزی و به جلوی در خانه بزرگی در حاشیه میدان رسید ای که هرگز بان وارد بود در را با فشار باز کرد از روی خط سیر خون به اتاق خواب رفت در حالی که نفسش در اثر بوی باروت بند آمده بود پسر بزرگش خوز آرکادیای دوم را دید که کف اتاق و کنار هایش که معلوم بود تازه از ساغها بازشان کرده افتاده و در خون خود قرر است منبع خون را در گوش راست او که دیگر خونی از آن تروش نمی دید در بدنش زخم دیگری پیدا نکرد و از اسلاحه هم اثری نبود بوی زننده باروت را نمی از بین برد ابتدا او را سه بار با آب و صابون شستند و با برس بدنش را سابیدند. بعد با نمک و سرکه و آب لیموی مخلوط با خاکستر مالشش دادند. دستاخر جسد را در بشکه چوبی بزرگی که محتوی قلیاب صابون بود فرو کردند و گذاشتند شش ساعت در همان حالت بماند. بدن او را آنقدر سابیدند تا آثار خالکوبی ها از بین برود، اما هنوز هم آن بوی تند باروت از بین نرفته بود. تنها چارایی که به ذهنشان رسید این بود که جسد را با پودر فلفل قرمز و زیره سبز و برگگار ادویه مالی کنند. بعد هم یک روز تمام آنقدر او را داخل دیگ بزرگی با آتش ملایم جوشاندند که یک آن متوجه شدند جسد در حال متلاشی شدن است. بنابراین مجبور شدند با عجله دفنش کنند. برای این کار او را در تابوت مخصوصی به طول دو متر و بیست و پنج سانت و به عرض یک متر بیست سانت قرار دادند که با تسمه و پیچ و محرهای فولادی تقویت شده بود اما بوی زننده باروت در مسیر تشیه پیکرش از هر خیابانی که گذشته بودند باقی مانده بود پدر روحانی نیکانور در اثر بزرگ شدن کبد شکمش باد کرده و به اندازه یک بشکه شده بود و نمی‌توانست حرکت کند او در حالی که در بستر خود دراز کشیده بود برای آمرزش روح او دعا میخواند. با وجود اینکه در طول ماه‌های بعد در اطراف قبر او دو لایه دیوار کشیدند و میان آنها را از خاکستر فشرده همراه با خاکره و آهک آب ندیده پر کردند اما هنوز هم بوی باروت در فضای گورستان پیچیده بود تا اینکه چند سال بعد مهندس های شرکت نوبنیاد موز روی همه آن استحکامات را با لایه زخیمی از بتون پوشاندند. در آن روز کزائی پس از اینکه جسد خوزارکادی دوم را برای دفن از خانهش خارج کردند و ربکا به آنجا برگشت خود را در یعص و هرمان عظیمی زنده گور کرد طوری که دیگر هیچ گونه وسوسه دنیاوی قادر به خاتمه دادن آن نبود تنها در یک مورد خاص زمانی از خانش قدم به بیرون گذاشت که دیگر خیلی پیر شده بود کفش‌های قدیمی نقره رنگ به پاداشت و کلاهی بر سر گذاشته بود که از گلهای ریز ساخته شده بود این درست در زمانی بود که یهودی سرگردان از شهر عبور کرد و با خود موجز هوای داغ به هم آورد که حتی پرنده های آسمان از ترس جان خود را به پنجره ها کوبیده و از لای پردهها گذشته و در کف اتاقها به هلاکت می رسیدند. آخرین باری که ربکا زنده دیده شد، موقعی بود که دو زیرا به خاطر ورود به خانه با شلیک گلوله کشته بود. پس از آن به جز پیش خدمتش آرخنیدا که محرم اسرارش بود کسی با او تماس نداشت. یک بار معلوم شد نامه را برای اسخوفی می نویسد که ادعا می کرد پسرمویش است اما هرگز مشخص نشد که جواب نامه ها را دریافت کرده یا نه در نتیجه شهر او را به کلی فراموش کرد سرهنگ اورلیانو و با وجود بازگشت پیروزمندانش به ماکوندو از اوزا چندان خوشنود نبود نیروهای دولتی بدون هیچگونه مقاومتی او سرای خود را رها کرده و رفته بودند این موضوع از دید آزادی خواهان شهر نوعی پیروزی محسوب میشد شد و آنها را به پیروزی نهایی امیدوار می کرد امیدی که از بین بردنش عاقلانه نبود اما انقلابیون از حقایق پشت پرده آگاه بودند و سرهنگ آرلیانو بهتر از همه از آنها با خبر بود از سوی دیگر گرچه او بیش از پنج هزار نفر قوای تحت امر در اختیار داشت و هر دو ایالت ساحلی را صاحب شده بود اما احساس می‌کرد به ساحل دریا رانده شده و محاصره شده است. برابر این دستور داد تا دو تا از برشهای ناقوس کلیسا را که در اثر اصابت گلوله های توپ قوای دولتی تخریب شده بودند تعمیر و بازسازی کنند. پدر روحانی نیکانور در بستر خود گفته بود بوزا عجیبیه، بوای محافظ کار کلیسا میزنه و اینجا را خراب میکنه، اون وقت آزادی مخالف کلیسا میان بازسازیش میکنن سرهنگ آرلیان بو ضمن اینگونه این گونه اقدامات مرتب به دنبال سوراخی میگشت تا بتواند خودش را از این مخمس نجات بدهد او ساعتهای زیادی را در تلگرافخانه خانه مینشست و مدام با فرماندهان شهرهای دیگر تماس میگرفت تا بلکه راه حلی پیدا کند. اما هر بار که از آنجا خارج میشد، برایش مسلم شده بود که جنگ به بنبست رسیده. در نتیجه وقتی خبر پیروزیهای تازه آزادیخوان پخش میشد، شادی عمیقی را باعث می میگردید. اما وقتی خود او حرکت قوای آزادیخوان را بر روی نقشه دنبال میکرد، می دید که آنها بیشتر به داخل جنگل نفوذ کرده و دائم در مقابل حجوم پشه ها و مرض مالاریا در پریشانی به سر برند و بر خلاف مسیر واقعیت ها پیش می روند. او با خشم و ناراحتی به افسران ستادش می گفت اون حرومزاده های عضو حسب برای کرسی های مجلس دارن از دولت گدایی می کنن وقت ما اینجا داریم وقتمون رو طرف می کنیم. او شب را در اتاقی که چند ماه قبل در آن زندانی شده بود گذراند. در همان اتاقی که روی گهواره سفریش به پشت دراز کشیده بود و خوابش نمی برد و منتظر مرگ بود و کلای مجلس را تجسم می کرد که با فراک بلند مشکیشان در هوای سرد صبح پایتخت تخت یقیه خود را بالا کشیدند تا گوشهایشان را از گزند سرما حفظ کند و در حالی که دستهایشان را به هم می مالند به کافه ملالاوری پناه میبرند تا با هم به تبادل افکار بپردازند که وقتی آقای رئیس جمهور در جواب فلان سوال بله می گوید یا در مورد سوال دیگر نه می‌گوید منظورش چیست؟ یا وقتی جواب متفاوتی میدهد در ذهنش چه میگذرد این افکار زد و نقیز در حالی از ذهن او عبور می کرد که از شدت گرمای 35 درجه خوابش نمیبرد و پشه های مزاحم را از خود می راند. و از سوی دیگر به نزدیک شدن صبح هولانگیزی فکر می کرد که باید به نفرات زیر دستش فرمان میداد که خودشان را به دریا پرتاب کنند در یکی از همین های بلا تکلیفی وقتی پیلار ترنرا را در محوطه سربازخانه دید که داشت برای سربازان آواز می از او خواست تا با فال ورق آینده او را پیش بینی کند پیلار هم پس از سه بار که کارت ها را روی میز ریخته بود و جمع کرده بود تنها یک حرف برای گفتن داشت معنیشو درست نمیدونم اما خیلی واضح داره میگه که مراقب دهنت باش دو روز از این پیشگویی نگذشته بود که شخصی یک قوری قهوه بدون شیر را به دست سربازی داد تا آن را به سرهنگ آرلیان و برساند. آن سرباز قوری را به دست سرباز دیگری داد و قوری قهوه آنقدر دست به دست شد تا اینکه به دفتر سرهنگ آرلیان و رسید. او قهوه نخواسته بود اما وقتی آن را آماده روی میزش دید فنجان ریخت و نوشید. قهوهی که حاوی آن مقدار از استرکنیم بود که می توانست یک اسب را بکشد. وقتی او را به خانه بردند، بدنش خم شده و مانند چوب خوشک شده بود. زبانش از دهانش بیرون زده و دندانهایش روی هم قفل شده بودند. اورسولا برای نجات او از مرگ وارد نبرد شد. ابتدا میدهش را با داروهای قیاور شستشو داد، بعد، او را لای پتو پیچیده و سفیده هشت تخم مرغ را به خوردش داد و این کار را به مدت دو روز ادامه میداد تا دمای بدنش به حالت عادی برگشت روز چهار خطر دور شد برخلاف میل خود و به اصرار ارسلا و سلاح افسرانش یک هفته دیگر در بستر استراحت کرد و تازه در این زمان بود که فهمید ارسلا شعرهای او را نسوزانده ورسولا برایش توضیح داد من نمی‌خواستم عجله کرده باشم اون شب که اجاقو روشن کردم به خودم گفتم دست نگهدار تا جسدشو بیارن بعد این کارو بکن سرهنگ اورلیانو بوئندیا در حالی که خود را پوشیده در افکار مبهم رمدیوس می‌دید ترین تصمیم عمرش را گرفت و شروع به خواندن اشعار خود کرد بعد شروع به سرودن اشعار دیگری کرد و در حالی که در بلا تکلیفی نجنگ و نه به سر برد و آیندهی برای خود تصور نمی کرد، تمام تجارب خود را بر لبه مرگ و نیستی به صورت اشعار منظومی و روی کهاز آورد به دنبال این کار افکارش چنان باز و واضح شدند که می توانست شعرهای خود را از اول تا به آخر و از آخر تا به اول بخواند. یک شب از سرهنگ جرینل دو مارکس پرسید دوست قدیمیه من میخوام بدونم اصلا برای چی یا برای کی و به چه دلیلی میجنگی سرهنگ جرینل دو مارکس هم جواب داد خب برای حزب بزرگ آزادی خواه دلیل از این بهتر؟ او بعد از شنیدن این جواب گفت تو آدم خوشوقتی هستی و دست کم میدونی برای چی میجنگی اما من همین حالا به این واقعیت رسیدم که فقط به خاطر غرورم می جنگم. سرهنگ جرینلد و مارکز با بوهد زدگی به او نگاه کرد و گفت اه این که خیلی بده. سرهنگ آورلیان بوئندیا از این رکگویی و خوشش آمد و گفت آره، ولی بهتر از اینه که ندونی به خاطر چی میجنگی. بعد به چشمان او نگاه کرد و با لبخندی ادامه داد. یا مثل تو جنگیدن به خاطر چیزی که هیچ نفعی برای هیچ کس نداره. غرور او اجازه نمیداد تا با گروه های نظامی دیگر در داخل مملکت ارتباط برقرار کند تا اینکه رهبران حزب به آزادی خواه همگی هم رأی و هم کلام او را یک راهزن اعلام کردند. میدانست به محض اینکه شک و تردیدهایش را کنار بگذارد، حلقه خشن جنگ را از هم خواهد گذست از طرفی دوره نگاهت او فرصت کافی را برای فکر کردن در اختیارش گذاشت. او توانست اورسولا را راضی کند تا بقیه ارسیه دفن شده را در اختیار را او بگذارد. بعد سرهنگ جرینلدو مارکز را به عنوان فرمانده نظامی و غیر نظامی ماکوندو تعیین کرد و با قشون خود برای برقراری ارتباط با گروههای یاقی دیگر از آنجا حرکت کرد. سرحنگ جرینلدو مارکز در عمل نشان داد که نزدیکترین دوست سرهنگ آرلیانو بوندیا است و از طرف اورسولا هم به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته شد. او مردی ظریف و خجالتی بود و خوش‌قلبی‌اش بیشتر مناسب جنگ بود تا اداره شهر. در نتیجه مشاوران سیاسیش به راحتی توانستند در تاروپود های سیاسی و اداری گرفتارش کنند. اما با تمام این گرفتاری ها او موفق شد در مکند فضایی را حاکم کند که سرهنگ آرلیانو دائم در رؤیای خود می دید. رؤیایی که در آن دوران پیریش را در صلح و آرامش و با ساختن ماهی های کوچک تلائی سپری می کرد. سرهنگ جرینلدو و مارکز با وجود آن که در خانه مادر و پدرش زندگی می کرد اما هفته دو سه روز نهار را مهمان ارسلا بود. او آرلیانا را ترغیب می کرد تا با کار مهمات و انواع اسلحه آشنا شود و درس های اولیه نظامی را بیاموزد و با رضایت ارسلا او را برای چند ماهی به آسایشگاه سربازان برد تا یک مرد بار بیاید. سالها پیش زمانی که جرینل و هنوز یک نوجوان بود عشق خود را نسبت به آمارانتا اعلام کرده بود. آمارانتا هم که در آن زمان در تب و تاب پیترو کرسپی میسوخت به ابراز عشق او میخندید اما جرینلدو مارکز دندان روی جگر گذاشته و صبر را پیش گرفت و موقعی هم که در دست قوای دولتی اسیر و زندانی بود از درون زندان یادداشتی برای آمرانتا فرستاده و از او خواسته بود تا یک دوجین دستمال ملیل دوزی شده را با حروف اول اسم پدرش برای او بدوزد ازینه آن را هم برایش فرستاده بود یک هفته بعد، آمارانتا های سفارشی را به همراه اصل پول با خودش به زندان برد و به او تحویل داد. از فرصت استفاده کرده و چند ساعتی کنار او نشسته و با هم از گذشته ها حرف زده بودند. وقتی که آمارانتا می‌خواست آنجا را ترک کند، جرینلدو مارکز به او گفته بود: اگه از اینجا بیرون اومدم بات ازدواج می‌کنم. امارانتا باز هم به این حرف خندیده بود اما ناخواسته به او فکر می کرد. و زمانی که مشغول یاد دادن خواندن و نوشتن به کودکان بود سعی می کرد خاطرات دوران عشق خود به پیترو کرسپی را در او زنده کند روزهای شنبه روز ملاقات بود امارانتا به خانه پدر و مادر جرینلدو مارکز میرفت تا به همراه آنها به ملاقات او برود در یکی از همین روزهای شنبه بود که ارسلا با تعجب آمارانتا را در آشپزخانه خانه دید که منتظر ایستاده تا بیسکویت‌ها را از داخل فر بیرون بیاورد و بهترینشان را انتخاب کند و در دستمالی که برای همین کار دوخته بود بپیچد و آنها را با خود برای جرینلدو و مارکز ببرد. ارسلا به او گفته بود باش ازدواج کن، پیدا کردن مردی به خوبی اون آسون نیست. اما آمارانتا وانمود کرد که از حرف او دلخور شده و جواب داد من برای شکار شوهر را نیفتادم. فقط به این دلیل به دیدن جرینالدو میرم که دلم براش میسوزه چون دیر دیریازد اعدامش میکنن این حرف را بدون معنای خاصی به زبان آورده بود چیزی از این ماجرا نگذشته بود که دولت محافظه کار مرکزی اعلام کرد اگر گروه های آشوبگر دست از شهر بندری بر ندارند آنها سرهنگ جرینلدو مارکز را تیر باران خواهند کرد ملاقات های روز شنبه قط شد و آمارانتا هم خودش را در اتاقش زندانی و شروع به گریه کرد. او گرفتار اوهام بود و خودش را مانند قتل رمدیوس مقصر میدانست. گویا یک بار دیگر حرفهای بی ته او موجب قتل دیگری میشد. اما مادرش این دلداری به او اطمینان خاطر داد که آرلیانو دست به اقدامی خواهد زد تا جلوی اعدام او را بگیرد. همچنین به او قول داد که وقتی جنگ به پایان رسید خودش شخصا نظر جرینلدو را نسبت به او جلب خواهد کرد. اورسولا در این رابطه حتی قبل از موعد مقرر به وعده خود وفا کرد. یعنی زمانی که جرینلدو مارکز به عنوان رهبر نظامی و غیر نظامی شهر زمام امور را در دست داشت. نه تنها او را مثل پسر خود در خانهشان پذیرفت بلکه آرزو میکرد که جرینلدو قول و قرار خود را برای ازدواج با آمارانتا فراموش نکرده باشد اوزا نشان می داد که انگار دعاهای او مستجاب شده و جرینلدو در روزهایی که برای صرف نهار به خانه آنها می آمد لحظاتی را به ایوان می رفت و با آمارانتا شطرنج چینی بازی می کرد. در چون مواقعی مواقع دست به کار می شد و هین آوردن بیسکویت و قهوه شاگردان کودکستان آمارانتا را به اتاق دیگری میبرد و خودش به آنها رسیدگی میکرد تا آن دو بدون مزاحمت دیگران بتوانند راحتتر صحبت کنند. آمارانتا هم به سهم خود تلاش میکرد تا آتش عشق فراموش شده در دلش را بار دیگر شعلهور سازد و زمانی که می دید دل دل‌هورش قابل تحمل نیست، به انتظار روزهای نهار و بازی شطرنج باقی میماند تا جایی که در وقت دیدار انگشتانش هین جا به جای مهرها ها می لرزیدند. با وجود این آرزوها روزی که سرهنگ جرینل و مارکز تغازای ازدواج با او را تکرار کرد اماران تا این تقاضا را رد کرد و گفت من با هیچ کس ازدواج نمی کنم به خصوص با تو توی که آشق آورلیانو هستی و چون نمی تونی باش ازدواج کنی می با من که خواهرشم ازدواج کنی از آنجایی که سرهنگ جرینلدو مارکز مرد صبوری بود گفت من به درخواستم پابند میمونم و بالاخره دیر دیریازود رازیت میکنم او به رفت آمد خود ادامه داد هر وقت به آنجا میآمد و آخرین اخبار جنگ را به اطلاع ارسلا میرساند امران تا با وجود اینکه دلش برای دیدن جرینلدو پر میکشید خودش را در اتاقش حبس میکرد و برای آنکه حتی صدای او را نشنود دستهایش را محکم روی گوشهایش فشار میداد. در آن زمان سرهنگ آرلیان بویندیا توانسته بود ترتیبی بدهد که آخرین اخبار وضعیت خودشان را هر دو هفته یک بار به مکند مخابره کنند اما در طول هشت ماهی که از آنجا رفته بود تنها یک بار برای ارسلا نامه نوشت یک روز پیکی نامه ویژه محرموم شده ای را به خانه آنها آورد که در آن کاغذی وجود داشت با خط خود او که چون این نوشته شده بود از بابا خوب مراقبت کنید چون به زودی می‌میره اورسولا از خواندن نامه بهت زده شد و گفت اگه اورلیانو اینو گفته پس این اتفاق حتماً می‌افته او از اطرافیانش خواست تا به او کمک کنند که شوهرش خوز و با بوندیا را از درخت بلوط باز کرده و به اتاق خودش ببرند خزار کادی و با اندیا در طول این همه سال که زیر آن درخت بی حرکت مانده بود نه تنها وزن کم نکرده بود بلکه آنقدر چاق و سنگین شده بود که هفت نفر مرد به زور توانستند او را کشان کشان به اتاقش ببرند و روی تخت خوابش بخوابانند. تختخوابی که بوی میداد آمیخته از بوی قارچ تازه و کپک و کهنگی آن اتاق حالا پذیرای پیرمرد درشت اندامی میشد که در اثر اقامت طولانی مدت در هوای آزاد و در زیر باد و باران و آفتاب پوست بدنش مانند چرم دباقی شده بود. صبح روز بعد او در رخت خوابش نبود. هرچند نیروی جسمانی خود را کماکان حفظ کرده بود اما در شرایطی نبود که بتواند مقاومت کند. نسبت به همه چیز بی تفاوت بود و اگر میل داشت که دوباره به زیر درخت بلوت برگردد، به این خاطر بود که به بودن در زیران درخت عادت کرده بود. ارسولا از او مراقبت میکرد و برایش غذا می‌آورد و آخرین خبرهای مربوط به آرلیانو را برایش بازگو میکرد. اما این پیرمرد فقط قادر به ارتباط با پرودنسیا آگویلار خوص باز بود که بعد از گذشت سالها از زمان مرگش حتی استخوان‌هایش هم در گور پوسیده بودند. طبق ادعای خوزار کادی و پرودنسیو پرودنسی و آگویلا روزی دو بار پیش او میآد تا با هم گپ بزنند. صحبت آنها پیرامون خرص های جنگی بود. با هم قرار گذاشته بودند که یک مزرعه تولید و پرورش پرنده های زیبای کمیاب دایر آبدایر کنند. البته نه به خاطر لذت از برنده شدن آنها در مسابقات که آن موقع دیگر نیازی با آن نداشتند بلکه این کار بهانه باشد برای سرگرمیشان در روزهای یک شنبه پس از مرگ. حالا این پرودنسیو آگویلار بود که او را تمیز می کرد او غذا می داد و خبرهای خوبی را از شخصی ناشناس برایش می آورد که گویا اورلیانو نام داشت و در جنگها خودش را سرهنگ آورلیانو بوهندیا می نامید خوزارکادیو بوهندیا تنها که می شد خود را با رؤیای اتاقهای تو در توی بی سرگرم می کرد. او در رؤیای خود می دید از خواب بر می خیزد. در را باز می‌کند و وارد اتاق مشابهی می‌شود با همان تختخواب خواب که پشتی آهنی زمختی داشت و با همان صندلی گهواره‌ای و با همان شمایل کوچک مریم از رای فریاد فریادرس که از روی دیوار عقبی آویخته بود از آن اتاق به اتاق دیگری می‌رفت که درست مثل این یکی بود و در آن به اتاق دیگری باز میشد و به همین ترتیب یکی بعد از دیگری تا بی نهایت ادامه میافت او دوست داشت مانند یک گالری از این اتاق به آن اتاق برود درست مثل این بود که جلوی دو آینه مقابل هم ایستاده باشد اینقدر جلوی آینه ها راه برود تا اینکه پرودنسیو آگویلار دست به شانه او زده و متوقفش کند او هم از همون جایی که ایستاده بود اتاق به اتاق به عقب برمیگشت و این بازگشت آنقدر ادامه پیدا می کرد تا به اتاق اصلی می رسید. به همانجا که ابتدا در آن بود دوست خود پرودنسیو آگویلار را در آنجا میدید. تا اینکه یک شب پس از آنکه دو هفته از زمان انتقال او به داخل اتاق خوابش میگذشت، پرودنسیو آگویلار در یکی از اتاقهای وسطی دست بر شاش گذاشت و او تا عبد در آنجا ماندگار شد. و فکر کرد که آنجا اتاق اصلی است صبح فردای آن شب موقعی که ارسولا داشت صبحانه را برایش می برد مردی را در حال آمدن به سرسرا دید مردی کتاخت با شکمی گنده و با یک دست لباس مشکی و کلاه بزرگی به همان رنگ که از سرش تا روی ابروهایش را می پوشند با دیدن او از تعجب زیر لب گفت خدای بزرگ میتونم قسم بخورم که خود ملکیاددسه اما او کاتاور برادر ویزیتاسیون بود همان پیشخدمت سرخ پوستشان که سالها قبل با و مرض بیخوابی از خانه آنها گریخته بود و دیگر هیچ خبری از او نداشتند حالا وقتی خواهرش از او پرسید که بعد از این همه سال برای چه برگشته به زبان سرخ پوستی جواب داد برای شرکت تو مراسم تدفین سلطان اومدم بعد به همراه هم وارد اتاق خوزارکادی و با اندیا شدند بی حرکت بود با قدرت هرچه تمام تر تکانش دادند توی گوشش داد زدند آینه جلوی سراخهای دماغش گرفتند اما نتوانستند بیدارش کنند بعد موقعی که نجار آمد و قد و پهنای او را اندازه می گرفت تا برایش تابوت بسازد از پنجری باز آنجا دیدند که از آسمان گلهای ریز زرد رنگی با حالتی ملایم در حال باریدن است از شب گذشته تا آن لحظه بارش گلها در سراسر مکندو با نسیم ملایمی آنقدر ادامه داشت که روی پشت بامها را پوشانده بود پشت درها را مسدود کرده بود حیواناتی را که بیرون و در هوای آزاد خوابیده بودند زیر خود خفه و مدفون کرده بود و سطح خیابانها را با فرشی از گل پوشانده بود. گلها آنقدر زیاد بودند که مردم مجبور شدند با بیل و پارو راه را برای تشییع پیکره خوز ارکادی و با اندیا باز کنند. wo bei bei